الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له شريك في الملك فلم يكن له ولي من کبر وكبره تکبیرات و سلات و سلام على خیر خلقیم، و اشرف بریته سیدنا و مولانا حبیب اله العالمین محمد صلی اللہ عليه و آلیه و سیما ناموس الدهر و امام العصر خجت ابن الحسن العسكري المهدی ارواح لتراب نالدورا به مقدم مجمعین منالانلا قیام يوم الدین خوب سعادتی شد یه چند دقیقه بعد از نماز اشام ما بتونیم در این امامزاده در خدمت نمازگزاران و ارادتمندان اهل بیت علیه السلام باشیم و تو این چند دقیقه عرض میکنم که همه شنیدین که پیامبر فرمودن که یکی از خصوصیات ماه مبارک رمضان اینه که شیاطین در این ماه در قل و زنجیرند ویژگی زیادی ماه رمضان داره یکیش اینه که پیامبر فرمودند شیاطین در قل و زنجیرند شما دعا کنین یک کاری بکنین که اینا دوباره به شما مسلط نشند تو قرآن هم شیطان به صورت مفرد اومده هم شیاطین به صورت جمع تو قرآن شیاطین هم داریم شیطان هر جا میگه همین ابلیسه که یه جن متمردی بود که اسمش ابلیس بود این فرمانده و حزبم داره خدا میفرماید حزب و شیطان مرید داره، کارمند داره، زیر دست داره زیر دستاش شیاطینند که جمع آورده شده حالا هم جن هست هم انسان تو این حضب الان انسان هایی هستند تو همین تهران هم فعالیت میکنند که اینا شیطان پرستند تحت حضب این هستند طرفدار داره شیطان کم طرفدار نداره چون هر فاش دلنشین دیگه همش میگه این شیطان میگه هر کاری دلت میخواد بکن طرفتار پیدا میگن میگه هر چی دلت میخواد بخور خدا طرفدار نداره چون خدا همش میگه که نکن خدا میگه دروغ نگو غیبت نکن نامحرم نگاه نکن خب مردم خوششون نمیاد. همه شیطان میگه تو حزب من همه چی آزاده رو این طرفدار داره دیگه بینید بعضی ها میان میگن چرا تمدن آمریکا اینقدر طرفدار داره میگم علتش همینه که اونجا بیبندوباری آزاده هوسرانی آزاده شهوترانی آزاده مردم هم دوست دارن این چیزها رو اما خدا همه چی رو میگه حرومه <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> مردم خوششون نمیاد دلیل نمیشه اگه چیزی رو مردم دوست دارن سعادتشون هم تو همونه باید مردم بچه هم تو مدرسه دوست داره که همش تفریح کنه همش کلاس ورزش باشه کلاس خنده باشه دوست داشتن دلیل سعادت انسان نیست. اما اینایی که زحمت میکشن، شب بیدار میمونن، درس میخونن، اینا اذیت میشن ولی چی میشن؟ پروفسور حسابی میشن. بچو. پاستور میشن. به اثر مجاهدت، به زحمت. اما اینا که همش دنبال تفریح و کلاس جوک و اینا به جایی نمیرسن. کمان کسانی که میشند پرفسور حسابی چند تا میشند تو هر قرنی یه دونه دو تا عطبت میکن کم کسی بشه عباس ابن علی چند تا میشن؟ کم آدم بیاد بشد کی آقا شیخ مرتزای انصاری ولی اینجور آدم ها زیاده آدمای های شهوتران زیاد آدم های حوستران زیاد ولی اینا به جایی نمیرسند حالا قراز زمین است شیطان هم تو حزبش انسان ها هستن هم اجنه خاطر این در سوره ناس چی میگیم قل عوض و برب ناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخنناس آخرش میگه من الجنت و ناس یعنی شیطان هم جنی داریم چی خیلی رفیقای های شما خیلی رفیقا ها شیطان دیگه آدم میبرن دنبال آدم رفیق بد داشته باشه شیطان هست این های انسی خطرناک هست چون انسان هوشش بیشتره علمش بیشتره از جنس خود ماست اگه اون انسان بره تو مسیر شیطنت از اجنه خیلی خطرش بیشتره یار بد بدتر بود از مار بد دوست بد آقا خیلی بدتر از شیطانه چون از جنس خودمونه بعد هوش آدمی زاد هوشش بیشتر از جنه الان من معتقدم این تمدن آمریکا که اومده اصلا شیطان بازنشد شده دران تو خون خوابیده به خدا دیگه اصلا که Hey, به این آمریکایی‌ها ها میگه پدر و مادرم هم فداد من عقل پدرجد من به این چیزها نمیرسید که فضای مجازی درست کنم و نمیدونم اصلا اون کجا این چیزها رو بلد بود اینا اومدن اصلا اون رو واقعا شیطان الان بازنشسته هست پاشو انداخته تو خونه رو پاش قرمون صدقه اینا میره میگه که پدر و مادرم هم فدای شما عقل جن به اینا چیزها رسید که شما درست کرد این شیطان انسیه پیامبر فرمودن که شیطان در ماه رمضان در قلو زنجیره یه کاری کنین دیگه رو شما مسلط نشه من یه حدیثی به همین مناسبت بعد ماه مبارک رمضان هم هست که باید بگیم اینا چیزاییه که شیطانو رو دست و پاشو می‌بنده راه‌های مقابله با شیطان خیامبر فرمودند من با این مقدمه‌ای که گفتم یه توجهی بفرمایید سلاستن معصومون من ابلیس و جنوده سه دسته از مردم از مکر شیطان و دار و دسته لشکریانش در امانند مسونند. حالا چون ما میخوایم عرایزمون مختصر باشه گروه اول از ذاکرون الله کسی را اونایی که خدا رو زیاد یاد میکنند حالا ما رمزون هم ما رم از اون اگه شیطان در قل و زنجیر بود چون ما خدا رو بیشتر از ماهای دیگه یاد میکردیم ما رمزون مدام همین سهری میخوره یاد خداست همین سهر که با میشی رادیو رو وای میکنید دعای سهر می همین یاد خدا رو زیاد همین آدم نماز صبحش اول وقت میخونه یاد خداست همین نماز رو میرن تو مسجد به جماعت میخونن یاد خداست همین یک ختم قرآن میکنن رادیو رو وای میکنید دارن یه جوزخانی جز، قرآن تلویزیون تلویزیونو نه این که خدا خیال کنید قول و زنجیر آورده باشه شیطانو رو ببنده نه نه مردم با یاد خدا دست و پای شیطان رو چی کام کنم میبندن. مردم میبندن دست و پای شیطان تو این ماه بسته است چرا؟ چون یاد خدا بساتش پر, رو، پر رنگه پر رونقه اما اونایی که خدا رو یاد میکنن و آدمایی هستند بالاترین جنایت ها رو تو همین ماه رمزان میکنن یعنی چی شیطان در قل و زنجیره می آدم است که اتفاقا گناهش تو ماه رمزان بیشتر از ماهای دیگه هست یکیش اینه که روز خاره. <تصفح> ماهای دیگه اینو نداره دیگه مثلا دیدین بعضی‌ها یه دونه از این آبای معدنی دستشون میگیره تو خیابون مارم از اون رجه میرن اصلا اعلام میکنه که من روزه نمیگیرم روزه میخورن خب این یعنی چی؟ که شیطان در قل و زنجیره نه اونایی که خدا رو یاد میکنن شیطانو رو در قل و زنجیر میکنن خاطر این یکی از اسمایی که امام زینالابدین برای ماه رمضان شمرده در این دعای ودا وداع ماه رمضان تو صحیفه میگه السلام و علیکم من مجاورن قلت فیه میگه خدا حافظ همسایه ای که گناهات تو تو چی شد کم شد آدم هرجوری باشه ماه رمضان آدم کمتر گناه میکنه چرا چون خدا بیشتر یاد میشه ممکنی کسی مارمزون روزه بگیره و گناهاش نسبت به ماه های دیگه کمتر نشه خب. ببین رابطه معکوس هست بین یاد خدا و معصیت خدا هرچی شما خدا رو بیشتر یاد می‌کنی گناهات کمتر میشه هرچی خدا رو فراموش می‌کنی گناهات چی میشه اضافه میشه به خاطر این استراتژی شیطان اینه این نما یورید و شیطان ان یسود دکم ان ذکر الله و ان سلام خدا میگه شیطان هدفش اینه نظار شما خدا رو یاد کنین نظار نماز بخوانین نظر مسجد بریم نظر حیعت برین چرا چون هرچی شما خدا رو یاد نکنی گناه بیشتره هرچی خدا بیشتر یاد میشه گناه کمتره الان شما برین کربلا یه هفته بمونید گناهاتون کم میشه چون چون خدا بیشتر یاد میشه مثلا ببین ما یه ماه چند بار رفتن دیگه یه ما رفتم مدینه و مکه ایام حج اصلا گناهامون تقریبا صفر شد چرا چون خدا بیشتر یاد میشد دیگه همون که آدم اونجا خدا رو بیشتر یاد میکنه هاش کم میشه ما هم از اون مثلا گناه های ما خیلی انگیج شمار شد کم شد چون خدا بیشتر یاد شد یکی از راه های مقابله با شیطان اینه که آدم خدا رو زیاد یاد کند اگه میخوایین این حالات ما رمزون در شما ادامه داشته باشه همین کارایی که تو ما رمزون میکردین رو ادامه بدین نذارین خدا یادتون دادید خدا ماهیگیری یاد میده ماهی بهت نمیده <تصفح> میگه من یادت میدم که چجوری شیطان رو زنجیرش کنید میگه همین رو ادامه بده همین کاری که یه ما تمرین کردی مثلا ما از اون روزه میگرفتین این روزه رو ادامه بدین نزارین این شه کم کم سه روز بگیرین به یاد ما از اون دیگه اما از ما رام از اون تعریف میکنم. جا میرم میگن حیف این ماهی که میگم خب ادامه بده نا که این ماه خیلی هیفه پنج شنبه اول ماه روزه بگیرین پنج شنبه آخر ماه چهارشنبه وسط این روزه پیغمبر اکرم بود سنت بود الان همین پنجشنبه که میاد به عشق از اون بگین که ما خیلی صفا کردیم با روزه این پنجشنبه رو روزه بگیریم یکم پنجشنبه آخر یکی هم, هم چهارشنبه وسط که از بعد از دهم ده حالا که یه وقت چهارشنبه دهم شد اون نه 17 دهم. آره حتما با بعد چهارشنبه ده بعد دهم اما چهارشنبه چارشنبه یازده شد شد اون درست چهارشنبه چارشنبه یعنی دهم ده بعد بگذره. پیغمبر میفرمودن هر کی این سه روز و روزه بگیره خدا تو قرآن گفته من جا اب الحسنه فله اش رو امساله ها هر کی یه حسنه انجام بده من ده برابر بهش باداش میدم یعنی یه ما روزه براش می نویسند سه روز و سی روز می نویسن تمام سال رو روزه دارانه. روز قیامت میگن این همه سال روزه می گرفت چون ما یه روز و سه با... انقدر آقا این سه تا روزه مهمه که مستحب اگه کسی مسافر بود قضاشو بگیره مثلا پنجشنبه مسافر بود بگه غذای این پنشنبه رو پنجشنبه بعد می گیره اگه مریض بود مستحب قضاشو بگیرد از این پنجشنبه خدای خدایی نکرده مریض بود بگه پنجشنبه دیگه قضای اینو میگیرن. حتی من دیدم آدمایی که همیشه مریضند مستحب که مثلا دیابت داره ما رمضون هم نمیتونه روزه مستحب کفارهشو بده 2500 تومان کفاره که برای ما رمضون میده برای این سه روزم بده مستحب واجب نیست که به ثواب روز داران برسه یا مثلا تو این ما سهرها بیدار میشدین حالا بازم بیدار شد میگه خب اینجا سهری میخوردیم حالا هم پاشون کمپوت بخوریم مثلا سیب یه پوس بخوریم. داره پوست بکنیم بخوریم اف نداره مثلا یه شروت بخوریم یه چیز خوشمزه بذارین تو یخچال بگید سهر پا میشم اونو میخورن یه وضوعی بگیرین همونو بخوریم همین می دونید مکروه آدم سهری نخوره روزه بگیرد مستحب اصلا یک از اعمال این که مستحب آدم سهری بخورد ولو پیغمان من داره یه آب سهر پاشید سهری خوردن مهم نید بیداری سهر مهمه. میخواد می خواد بگه که اون ساعت رو بیدار باشین و جزء قافلین نباشین لا تکن به نال همین بیدار باشی نمازم نخوندی نخوندی کلیه سان رو به قبله بشین من به دوستان میگم یه دو سه مرتبه بگو یا ارحم الراحمین اشکت جاری بشه یه دلیل بالاتر برات بگم رو به قبله بشین یه دو سه با رو یه دو مرتبه بگو صلی الله که یا ابا عبدالله اسم امام حسین رو بیار سهرت یا تو این ما قرآن می اینو ادامه بدین مثلا یه جز می خونین یه جز ادامه بده حالا یه جز زیاد نیم جز بخون یه از بخون ولی اینو ادامه بده این ما سله رحم میکردین ادامهش بده مسجد زیاد میرفتین ادامه بدین شیطانو چیکار کنین آقایون دست رو پاشو ببندین اسیلش کنین با چی؟ با یاد خدا با یاد خدا اللهم انی اسألو که به قدس به حق و قدس که و اعظم صفات که و اسمائک دعای کومیل امیرون موین چه قسمهایی میده خدای به اسم اعظمه دوید به اعظم اسمائک و صفات یعنی به بزرگترین اسمات که همون اسم اعظمه. چی میخوای؟ ان تجعل اوقاتی من الليل و نهار به ذکر که معمورن. میگه خدای زندگی منو یه ساعتی از شبان روز اجازه بده من تو رو یاد کنم زندگی منم آباد شه شیرین شه زندگی منو سبزش کن خوردمش کن با یاد خودت بس پس یکی از چیزهایی که شیطان رو تو قل و زنجیر میکنه یاد خداست مارم از اونم اگه شیطان در قل و زنجیر بود مل مر همه یاد خداست حالا هر کی بیشتر یاد کرد شیطانو مثلا یه دم بیشتر خدا رو تو ما از اون یاد میکنه 4 تا زنجیر میبندن دور شیطان اگه کمتر یاد میکنن یه دونه زنجیر میبندن یعنی یاد خدا هر چی مز... یکی ممکنه هفتاد تا زنجیر ببنده تو دست و پای با یاد خدا مثلا امیرالمؤمنین معنی نیست تو این ما چه می‌کرده؟ جو چه جور شیطان رو اسیر می‌کنه با یاد خدا ما دیگه هم همینطور پس این یکی دووم المستغفرون بالاسهار من یه جمله براتون بگم میکروب به میکروب دو جا رشد میکنه یکی تو محیطهای تاریک یعنی همین نور آقا مبارزه با میکروبه همین چراقای اینجا رو که روشن میکنی میکروب زدائیه جند زدائیه اگه اینجا چراغش روشن نشه بعد دو سه ما بیاین اصلا همه اینجا رو بوی افن ور میدانیم چون جای تاریک محل رشد و نموه میکروبه شیطان کجا نفوذ میکنه؟ تو دلای تاریک دل وقتی تاریک شد محل نفوذ شیطان چی دل و نورانی میکنه یاد خدا قرائت قرآن زیارت آشورا عشق برای امام هر چی بتونی آقا این دلتو نورانی کنی دیو بگریزد از آن قوم که قرآن خوانند این شیاطین مثل شما میری حرم امام ریزه داری عشق میریزی این شیطونا فرار میکنن میرن میگن اینجا کارمانی میگه میگه حالا پسر بیاد بیرون میدون ونک گیلش میارین بچا بگه اونجا ضربفندیش میمونه میگه اینجا نمیشه میگه اینجا رفته پیش امام رضا داره عشق میلیزه الان کار نمیگیره خناس بهش میگن دیگه خناس به موجودی میگن که هر جا ببینه هوا پسه پنان میشه هر جا ببینه زمین آماده است آشکار میشه بچا جن اینطوریه خدا به ستاره هم چی گفته جوار الخنس میگه اینا هم هر جا می بینن خورشید اومده اینا میرن پنهان میگن یه کارمون نمیگیره خورشید اومده دیگه ستاره ها پنهان هر جا می خورشید رفت اینا آشکار میشن میگن الان تو تاریکی ما جلوه می کنیم شیطان هم اینجوریه هر جا ببینه شما غرق در یاد خدایی ول میکنه میره یکی از راه های مبارزه با شیطانی قلبش قلبشو نورانی کنه با یاد خدا دیگه میکروب کجا رشد میکنه محیط های آلوده همین که نظافت شما میکنیم این تمیز اینجا رو نگه این خودش مبارزه با میکروبه آدم اگه نظافت نکنه مثلا این فرشا رو نشوره این دیواله رو تمیز نکنه اینجا محل رشد و نمو چی میشه خود, خود بهداشت یعنی قلبتون رو نورانی نگه دارین و پاک قلب چی آلوده میکنه؟ معصیت گناه بعدی من روایت دیدم آدمی وقتی به نامحرم نگاه میکنه شیطان یه تیر سمی میزنه به قلبش چرا؟ میگه اول قلب رو آلودهش میکنم بعد نفوذ میکنم اول آقا این قلب و شیطان آلوده میکنه با نگاه به نامهرم با با قیبت با دروغ بعد که این قلب آلوده شد نفوذ کند جای آلوده محل نفوذ شیطانه بعد جنزدائی کرد چی جنزدائی میکنه استغفار که آدم سهرها بلند شه برای لقزش هاش استغفار کنه عشق بریزد چقدر خوب آدم سهر بلند شه؟ این کفاره گناهانه جنزدائیه بینید المستقفرون بالاسهار اونایی که سهرا بلند میشند برای گناه هاشون عشق میریزند اینا ها از خودشون دور میکنند با چی؟ با استغفار با گنزدایی با تمیز نگه داشتن روح روح رو نمیذارن آلوده بشه اینجا خب یه خرده بگذاره هفته یه بار شو باید وضافت کنی دیگه یه خرده بگذاره باید یه قلب من هم, هم اینجوری پیغمبر هم شما زنگار می‌گیرد همونطوری که فلز چی میشه زنگ میزنه دیدین آقا نقره گایش اون شفافیتش از دست میده یه چیزی میمالن شفاف میشه آهن دیدین زنگ دلم هم, هم اینجوری زنگار می‌گیره فهمید اینو جلا بدین با قرائت قرآن با استغفار با بعد اینو جلا داد تا چونو نفوذ شیطان رو گرفت همین نگاه به نامه. بعضی هم دیدید میگن مثلا میگن آقا این همه فساد آلا شبا گیر دادی به چهار تا موی یه زن آقا از همین جا شروع میشه <تصفح> به خدا آقایون از نگاه به نامحرم انحرافات شروع میشه لا او خطوات شیطان از این گام های شیطان تبعیت نکنی شیطان قدم به قدم آدم رو میکشنه مثلا شیطان هم نمیاد به من بگه که بیا مشروب بخور که میدونه نمیگیره مثلا بگه ما رم از اون تموم شده یه شب بیا ببین چه خالی میدید <تصحق> <تصحق> میدونه من نمیرم دیگه اصلا خودش آقا خسته هم نمیکنه هیچ وقتم هم به من همچین چیز بس وسوسه میدونه به من چی میگه حالا بذار از بالاتر از ماها بگم مثلا میدونی به آیت الله بهجت چی میگه به اون میگد که حالا میگه یه عمرتو نماز شب خوندی امشب تب داری حالا یه شب نخو، لرز داری دیگه تب کردی بدنت می لرزه حالا یه شب نخو، واجبم که نیست آقای بهجت میگه بدم نمیگه حالا ما که از چار درست داری خوندیم امشب تب و لرز داریم. همین تا نمیخونه دست میگه آخ جون یه قدم اومد طرف از این شد به شما میدونه چی میگه؟ میگه این همه نماز قفیله خوندی حالا یه شب نخون امشب خسته از خوبکشی هم داشتی از مسافرت هم اومدی شما میگه آره واجب که خسته هم هستی میگه خواهی یکا اما یه دفعه به خودت میادی تو آدم جوانی نیستی من خودم آقا آدمی نیستم که سال پنجه و بودم خودم هم نمیدونم که اینجوری شدم بلی شدم برای اینکه شیطان درجه به درجه گام به گام آدم رو به طرف خودش میکشه سن تدره هم قرآن میفرمایید. من حیصول آ علممون. میگه این درجه به درجه آدم رو میکشه به طرف خودش خدا آدمم نمیفهمه کی طرفش رفت <تصفيق> میگه آقا من یه نماز قفیله نخور میگه از همونجا شروع شد. هم از نماز قفیله شروع بعد گام بعدی میاد میگه حالا این هم آقا نماز تا اول وقت خوندی امرو فوتباله. ایرانم بازی داره حالا بعد نماز میخونی ببین حالا مراکش میبره ایران میبره شما میگی راستم. میگه حالا یه عمر خوندیمی یه شب نیم ساعتی میگه خب این قدم دوم یه خورده میگذره میاد میگه که حالا آقا امروز ضعف کردی شامتو بخور بعد میخوری یه دفعه به خود ببین پله په. یه دفعه به خود ببین اون آدم جوونی نیستی میگه من نمیدونم چی شد همین همین نص همین اول تطبی دل دلو آلوده میکنه شیطان اینا که ببینین اخلاص میکنن رشوه میگیرن اینا هم, هم از نگاه به نامحرم شروع میشه اول... تخم مرغ دوز آقا شطور دوزم میشه <تصفيق> اول میگن آقا چهار تا موه دیگه حالا ببینین نمین نه تمام از همینجا شروع میشه یه وقت ببینین همین آدمی که آقا میگو این خیلی مهمیال والا هم داره گه جاسوسم شده گه گای... ببینین پله پله هرچی بده میاد خسته هم نمیشه شیطان آقا هیچ وقت خسته نمیشه شما امرو بگی نه بعد از ظهر میاد میگه حالا صبح خیلی توپش بر بود مگه ولت میکنه شما خیلی صبح نگاه نکنی بزن ولت میکنه میگه حالا قروب قروب نگاه نکنی میگه حالا بزاد فیلم سینمایی شروع شد فیلم سینمایی نگاه میگه حالا فردا صبح که میاد میدون و نک آه تا پیر مرد بشی ولد نمی کنه میگه من بالاخره این گرفتار میکنم خسته نمیشه آه اون خسته نمیشه ما خسته میشیم آخر ما کم بیاریم تسلیم میشیم چون او دست بردار مییم لا تتبه او خطوات شیطان از گام های شیطان تبعیت نکنیم دو تا بحث نره گفتم چیکار کنیم که شیطان در قل و زنجیر باشه دو تا شو گفتم از زاکرون الله کسی را. المستقفرون بالازهار سوم الباکون من خشیت الله اونایی که زیاد گریه میکنن از خوف خدا گریه رو کم حساب نکن نا. گریه شیطانو رو دور میکنه. اونایی که زیاد گریه میکنن همین گریهی برای محمسین آقا چقدر شما رو حفظ میکنه از مکر شیطان یادم آدم برای محمسین زیاد گریه کنه زیاد عشق بریزد مردان خدا شاید در شبان روز چند ساعت گریه میکنند به خدا آیون اولیا خدا در شبان روز دو سه ساعت شاید گریه میکنند عین بچه میدونن که گر... پس یه جمله از امیرالمومنین المومنی بگم دیگه روزه بخونم ارحم من رأس و ماله رجا و سلاح و میگه بگه خدایا رحم کن رحم کن به این بندت که تنها سرمایش امیده به توه خیلی خش آقای اونا نمیگه سرمایش نماز شبه نمیگه سرمایش نماز اول وقته نمیگه سرمایش روزه های ماره میگه نه تنها سرمایه من امیده به توه اصلهم هم گریمه میگه هر جا بخوام کار پیش بره بچه دیدین بچه هر جا میخواد کارش پیش بره میزنه زیر گریه گریه بر هر درد بی درمان دوست. چشم این مولوی وقتی میخواد این قصه رو بگه بعد از اون حل، بچه حلو و فروش میگه دیگه باغلب و فروش میگه دیگه. که زد زیر گریه همه دستش رو گرفتن ریختن کارش راه انداخت. به خدا میزنی زیر گریه حضرت زهرا به دادت میرسه امام زمان به دادت میرسه اونایی که زیاد گریه میکنند من یک کلمه ذکر مصیبت کنم ایام تخریب قبرستان بقیه حالا اجازه میخوایم امروز یه جمله از امام حسن بگم نزدیک هر جا بنین جبونا آیون خانوما هر جا بری این مدده ها واعظا میگن حسین غریب میگن حسین غریبه اما این امام حسین الان یه بارگاهی داره مثل کربلا قرق نوره الان اگه شما بین الحرم این باشین همه این بارگاه نورانیه اما امشب اگه بقی بودین یه شم بلا قبر امام حسن روشنی این همه زائر الان تو حرم امام حسین دارن سلام میکنند اما کسی اگه بقی باشه یه زائر نیست به حسن ابن علی سلام میکنه. این امام حسین یه زنی داشت مثل رباب بعضی میگن شش ماه بعضی میگن یک سال کربلا اقامه عزا میکرد زیر آفتاب زیر سایبون هم نمی رفت هر چی میگفتن آقا برو خب زیر سایبون میگفت نه میگفت شما که ندیدین بدن امام حسین زیر آفتاب من به خودم اجازه نمیدم من زیر سایبون براش عزاداری کنم اما امام حسن روزه دار بود با زبون روزه همسرش چگرش رو پاره پاره کرد کاش این امت حالا دیگه نمیخوام همه رو بگم اما کاش به همین اکتفا میکردند. دیگه بدن متحرش رو تیرباران نمیکردن دلها بسوزد برای آقایی که این برادران تنومندش اومدن کنار بقی یکی یکی تیرا رو از بدنش خارج میکردن هی hey, امام حسین میگفت قارت زده کسی نیست اموالش رو قارت کرده باشن قارت زده منم یه داداش مثل تو رو دارم به خاک می هی hey می گفت حسن جان دیگه اترس استعمال نمیکنم دیگه معاسنم و خذاب نمی اما حسینیات دیگه نگفت کمرم شکست. اینو نگه داشت کنار القمه میگن اونجا یه دست به کمر گرفت یه دست به انان زلجنا هی hey صدا می زد علیام این کسر زهرین و قلت هیلتیب هی و الله و علیكم یا اهل بیت النبوه نصار روح بلند و مطهر حسن بن علی علیه السلام یه صلوات بفرستین تا فیض ببری